عزیمه علی گلزاده داستان قورباغه سبز کوچولو روزی روزگاری در یک گوشه از دنیا که اسمشو به خاطر ندارم دو پادشاه به نام فریدور و دیامانتینو زندگی می اونها اونا هم پسرمو بودند هم همسایه فرشت از هر دوی اونها مواظبت می کردن. البته علاقه فرشت ها به اندازه نصف عشق همسرانشون به اونها هم نبود. اینطور روایت می کنن که پادشاهان هر کاری که دلشون بخواد می تونن انجام بدن به همین دلیل درست رفتار کردن و خوب بودن برای اونها سختتر از مردم معمولیه پریدور و دیامانتینو هم این وضعیت رو داشتند از نظر فرشتهها از بین آن دو دیامانتینو بیشتر اشتباه میکرد و با همسرش آگلانتینو رفتار خوبی نداشت در نتیجه به او اجازه ادامه زندگی رو ندادند و او مرد از او یه دختر به جا موند که وارث سلطنت بود اما چون او هنوز خیلی کوچیک بود مادرش کارهای مملکتی او را به عهده گرفت تا دخترش بزرگ بشه ملکه یه بیوه عاقل خوشرفتار بود و سعی می کرد که مردم و راضی نگه داره تنها موردی که باعث ناراحتیش میشد دوری دخترش بود چون فرشتهها به دلایل خاصی سرپنتینه شاهزاده خانم کوچیک را با خودشون به آسمانها برده بودند هدی دیگه واقعا عاشق همسرش ملکه کنستانس بود اما همیشه با بیفکری‌هاش اونو عذاب می‌داد و برای اینکه پادشاه به خاطر این کاراش تنبیه بشه فرشته‌ها کاری کردند که ملکه ناگهان بمیره با مرگ ملکه پادشاه که اونو خیلی دوست داشت به شدت وابسته شد اما با این حال وظایف همیشگی خودش رو انجام می‌داد و درباریان به او لقب پریدور غمگین داده بودند به نظر غیر ممکن می اومد که کسی بتونه مثل پریدور 15 سال غم و غسته رو تحمل کنه و اگه زندگیش دست فرشته ها نبود حتما او هم می مرد تنها چیزی که باعث خوشحالی پادشاهی بیچاره میشد وجود پسرش شاهزاده سافیر بود که هنگام مرگ مادرش فقط سه سال سن داشت پادشاه هم به تربیت او خیلی اهمیت میداد. در 15 سالگی صافیر چرا که یه شاهزادهی خوب می باست بدونه، آموخته بود. در ذهن بسیار جذاب و خوش اخلاق بود. همون زمان ناگهان فرشته‌ها ترسیدن که نکنه عشق او به پدرش باعث بشه نقشه هایی که اونها برای شاهزادهی جوون کشیدن به هم بخوره و برای اینکه چنین اتفاق نیفته، اونها توی اتاق زیبا که مورد علاقه سافیر بود آینه کوچیکی نصب کردند که قاب سیاهی داشت شاهزاده چند روز اول متوجه چیزی نشد اما بالاخره چشمش به آینه افتاد و جلو رفت تا اونو از نزدیک ببینه اون چیزی که باعث تعجبش شد این بود که آینه تصویر اونو نشون نمیداد بلکه دختر جوونی رو نشون میداد که صورتش مثل ماه می درخشید میدرخشید عجیبتر اینکه تمام لحظات رشد دختر از کودکی تا جوانی درون اون آینه عجیب دیده میشد همونطوری که انتظار میرفت شاهزاده جوان باخته اون تصویر زیبا شد و بیرون اومدن از اتاق غیر ممکن شده بود براش چون تمام مدت مشغول تماشای اون غریبه خوش چهره بود اینکه شاهزاده هر لحظه که اراده میکرد میتونست دختر را ببینه واقعا خوشحالش میکرد اما گاهی اوقات به این فکر فرو می که سرانجام این ماجرا چی میشه تقریبا یه سال از بودن آینه جادویی در اون اتاق میگذشت که یه روز اتفاق کننده ای برای شاهزاده افتاد. طبق معمول او داشت دختر را تماشا می کرد که ناگهان احساس کرد تصویر یه آینه دیگه رو تو آینه خودش دیده. با همون شکل و همون قدرت جادویی او کاملا حق داشت. دختر جوان هم تازه صاحب یک آینه شده بود و تمام وقتش رو صرف تماشای او میکرد حالا دیگه صافیر میتونست به راحتی حدث بزنه چرا دختر تغییر کرده و چرا همیشه جلو آینهاش هست اما هرچی سعی کرد نتونست تصویر کسی را که تو آینه جدید بود ببینه چون دختر جوان همیشه جلوی دید او رو میگرفت تنها چیزی که اون میدونست این بود که تصویر مربوط به یک مرد هست و همین مسئله باعث حسادت او شد این هم یکی از نقشه های فرشته ها بود و باید قبول کنیم که اونها برای این کار دلایل مربوط به خودشون را داشتند. مدتی گذشت سافیر هجده ساله شده بود 15 سال از مرگ مادرش میگذشت پادشاه پریدور روز به روز افسرده تر می و بالاخره به شدت بیمار شد. طوری که به نظر می اومد روزهای آخر عمرش رو میگذرونه و مردم سرزمینش عاشق اون بودن و این خبر باعث ناراحتی اونها شد و از همه بیشتر شاهزاده رو قصدار کرد. در تمام مدت بیماری شاهزاده از تنها چیزی که حرف میزد ملکه بود و پشیمونی از عذاب دادن او و امید دیدار دوباره همسرش تمام پزشکان و داروسازان کشور به بالین پادشاه آمدند اما هیچ کاری از دستشون بر نیومد سرانجام پادشاه دستور داد او را در اتاقش تنها بگذارند و کسی مزاحمش نشه شاید شدیدترین بخش بیماری او درد قفسه سینه بود که نفس کشیدن را براش مشکل کرده بود به همین خاطر به خدمت کارش دستور داد پنجره ها را باز بذارن تا هوای تازه وارد اتاقش بشه. یه روز که او تازه توی اتاق تنها شده بود پرندهی با پروبالهای درخشان به پنجره نزدیک شد. کمی اطراف اون چرخ زد و بالاخره رو چارچوب نشست. پرهای این پرنده آبی آسمانی و طلایی بود. پاها و منقارش رنگ یاغوتی شفافی داشتن که طوری که نمیشد مستقیم به اون نگاه کرد چشماشو مانند دو الماس درخشان به زیبایی برق میزدند و روی سرش یه تاج قرار داشت نمیشد گفت تاج از چه چیزی ساخته شده بود فقط به نظر می با باشگوترین تاج روی زمینه در مورد صداش هم چون پرنده اصلا آواز نخود نمیشد نظر داد پرنده فقط به پادشاه خیره شد و وقتی مرد هم به اون نگاه کرد احساس کرد قدرتش رو دوباره به دست آورده پرنده برای مدت کوتاهی به پرواز در اومد و همانطور که نگاش رو پادشاه ثابت مونده بود چرخی داخل اتاق زد و با هر نگاه پرنده نیروی مرد بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه حالش به خوبی زمانی شد که ملکه هنوز نمرده بود پادشاه که از شفای خودش خیلی خوشحال شده بود بلند شد تا پرنده جادویی رو بگیره، اما پرنده به سرعت باد از دستش فرار کرد. توصیف پرنده برای کسانی که با سر و صدای پادشاه به اتاق ریخته بودند فایدهی نداشت. حتی با پای پیاده و سوار بر اسب به دنبال موجودی عجیب گشتن و از همه شکارچیان کمک گرفتن هم فایدهی نداشت. هیچ اثری از پرنده نبود. عشقی که مردم به پادشاه پریدور داشتند قدری ارزشمند بود که در یک چشم هم زدن تمام مردها و زنها و بچه ها به طرف دشتهای اطراف سرازیر شدند و شهر کاملا خالی شد همه این دوندگی ها نتیجه جز شلوغی و هرج مرج به دنبال نداشت از همه بدتر اینکه خیلی زود حال پادشاه دوباره مثل سابق شد این موضوع شاهزاده صافیر را که پدرش را از صمیم قلب دوست داشت خیلی ناراحت کرد و تصمیم گرفت کاری را که دیگران نتونستن انجام بدن خودش به تنهایی انجام بده او فوری آماده سفر شد و با وجود مشکلاتی که سر راشت قرار داشت به راه افتاد چند نفر از افراد خانواده هم که دلشون میخواست کمکش کنند اونو همراهی کردند شاهزاده هیچ نقشه‌ای نداشت برش فرقی نمیکرد کدام راه را انتخاب کنه. فقط به فکرش رسید که نقاطی را بگرده که معمولا پرنده ها اونجا لانه می سازن. او به سراغ پرچین ها و چمنزارها رفت اما هیچ فایده نداشت. حتی پرس جو کردن از افرادی که سر راهش میدید هم کمکی به او نکرد. هرچه بیشتر میگشت کمتر نتیجه می بالاخره، به بزرگترین جنگل دنیا که پر از درختان سرف بود رسید. اما با وجود اینکه شاخه های پربرگ درختها روی همه جا سایه انداخته بودند همه چمنها سبزها ها تازه بودند و گل‌های زیبا و رنگارنگی لابلای اونها رویده بود. صافیر احساس کرد اینجا باید همان نقطه ای باشد که پرنده ها برای زندگی، انتخاب میکنند و تصمیم گرفت تا تمام جنگل را نگشت از اونجا نره سپس دست به کار شد و دستور داد چند دام بسازند که مثل بالهای پرنده رنگارنگ باشه چون فکر میکرد هر موجودی به طرف چیزهایی میره که شبیه خودشه در این کار چند سیاد ماهر و خدمتکار با تجربه به شاهزاده کمک کردند پس از, از یک روز جستجو شاهزاد صافیر تشنه شد و اونقدر خسته بود که دیگه نمیتونست راه بره. ناگهان با خوشحالی متوجه یک چشمه کوچک آب شد که از زیر زمین میجوشه. او برای نوشیدن آب ظرفی برداشت و میخواست اون رو در آب فرو ببره که یک گرباقه سبز کوچک که از گرباقه دیگر زیباتر بود به داخل ظرف پرید. سافیر بدون توجه به زیبایی جانور با عجله اون را بیرون انداخت اما ای نداشت چون قورباغه دوباره به سرعت به داخل ظرف پرید سافیر که داشت از تشنگی حلاک می شد خواست که غورباغه رو پرت کنه که غورباغه با چشمهایی بسیار زیباش به او خیره شد و گفت من دوست پرندهای هستم که تو دنبالش میگردی بعد از اینکه تشنگی برطرف شد به حرفهای من گوش بده شاهزاده آب و نوشید و به دستور گروباقه سبز کوچیک رو چمنها دراز کشید تا استراحت کنه واقع گفت سعی کن تمام چیزایی که میگم به دقت اجرا کنی اول همه همراهان تو جمع کن و به اونها بگو به دفته یکی نزدیک اینجاست برن و تا وقتی دستور نداده ای همونجا بمونن فقط به طرف جنوب برو راهی را که سمت راست توست ادامه بده این جاده پر از سروه بعد از طی مسیر طولانی، بالاخره به قصر زیبایی رسید. حالا خوب گوش کن. این یک مشت ماسه رو بگیر و در نزدیکترین نقطه به دروازه قصر روی زمین بریز. این کار دو خاصیت داره. هم دروازه باز میشه و هم ساکنان قصر به خواب میرن. بعد مستقیم به استبل برو و به جز چیزایی که من میگم به هیچ چیز اهتمام نکن. بهترین اسب را انتخاب کن. روش به فوری پیش من برگرد. خب شاهزاده برات آرزوی موفقیت میکنم. بعد از گفتن این کلمات غورواغ کوچیک توی آب پرید و ناپدید شد. از وقتی که از خونه را افتاده بودند این اولین باری بود که شاهزاده اینقدر امیدوار شده بود. او تمام دستورات را اجرا کرد و همراهانش را به دهکده فرستاد و جاده که غورواغه گفته بود، کرد و به تنهایی جلو رفت و بالاخره به قصری رسید که با شکوه از چیزی بود که تصور می‌کرد چون از بلور ساخته شده بود و همین تزییناتش از طلای خالص بود اما مرد وقتش رو برای تماشای اون تلف نکرد و فوری ماسه‌ها رو روی زمین ریخت بعد از یه لحظه دروازه باز شد و همه ساکنان قصر به خواب عمیقی فرو رفتند سافیر مستقیم به استاب رفت و تازه بهترین اسب را پیدا کرده بود که چشمش به یراغ زیبایی افتاد که به دیوار آویزون بود او احساس کرد یراغ مخصوص همون اسبه و بدون اینکه به خطراتش فکر کنه چون هم او داشت اسب را می دوزید و هم زین اون رو با عجله اون را پشت حیوون گذاشت ناگهان ساکنان قصر بیدار شدند و طرف استاب هجوم بردند اونها شاهزاده رو دور کردن و اونو گرفتند و نزد اربابشون بردند اما شازاده شانس آورد چون با وجود توضیحات غیر موجهی که برای رفتارش داد ارباب قصر بدون هیچ سؤالی اجازه داد که بره صافیر بیچاره ناراحت و شرمنده به طرف چشمه برگشت ول قورباغه او رو خیلی سرزنش کرد او به عصبانیت گفت تو چه خیال کردی نکنه فکر کردی من برای سرگرمی اون حرفها را به زدم رفتی و هر کاری دلت خواست انجام دادی؟ اما شاهزاده که خیلی پشیمون بود اونقدر معذرت خواهی کرد که بالاخره قلب مهربون غرباقه نرم شد و کیسه کوچک دیگری بهش داد و این بار به جای ماسه داخل اون یک تکه طلا بود. توضیح داد که شاهزاده باید مثل بار قبل عمل کنه. با این تفاوت که این بار به جای رفتن به استاب. باید وارد ساختمون قصر بشه و خیلی سری وارد اتاقی بشه که بوی عطر از اون به مشام میرسه. در اونجا دختر زیبایی رو خواهد دید که روی تخت خوابیده باید فوری اونو بیدار کنی و با خود بیاری و به بحانه ای که میاره هیچ احتنای نکنه. شاهزاده تمام دستورات غرباخه رو یک به یک اجرا کرد. همه چیز خوب پیش میرفت. دروازه باز شد. ساکنان به خواب رفتند و او اتاقی را که دختر روی آن روی تخت خوابیده بود پیدا کرد. شازاده دختر را بیدار کرد و خیلی معدبانه ازش خواهش کرد که فوری همراهش بره. بعد از چند بار خواهش کردن دختر راضی شد اما به شرطی که اجازه داشته باشه اول لباسش رو بپوشه. این تقاضا به قدری معمولی و منطقی بود که به فکر شاهزاده نرسید اونو رد کنه. اما هنوز دست دختر به لباسش نرسیده بود که افراد قصر بیدار شدند و شاهزاده گرفتار شد. این اشتباه او باعث شد دوباره همه چیز خراب بشه و دیگه هیچ بهانهای برای توجیه رفتارش نداشته باشد. اگه فرشتهها به کمکش نمی اومدند و قلب سربازا را نرم نمی کردن، امکان نداشت آنها او را آزاد کنند و وضع از اونچه که بود بدتر میشد. اما موضوعی که بیشتر از همه او را عذاب می‌داد فکر برگشتن پیش قورباغه خیرخواه بود. او با چه روی می‌خواست این جریان را براش تعریف کنه؟ بالاخره بعد از مدتی این پا و اون پا کردن مرد به این نتیجه رسید که چاره دیگه نداره و هرقدر هم که قرباقه اونو سرزنش کنه حق داشه. قورباغه هم حسابی سرزنشش کرد چون خیلی از دستش عصبانی شد اما شاهزاده بارها و بارها از او عذرخواهی کرد و توضیح داد که رد کردن تقاضای خانم جوون براش خیلی سخت بوده و قورباغه فقط جواب داد تو باید یاد بگیری که فقط کاری را که از تو خواسته انجام بدی سافیر بیچاره که خیلی ناراحت بود اونقدر خواهش و تمنا کرد تا بالاخره خشم خرو فروکش کرد و یک سنگ الماس کوچک به او داد و گفت برگرد و به قصر برو این الماس رو جلوی در بگذار اما مواظب باش دیگه طرف استبل و اتاق خواب نری چون خیلی خطرناکه مستقیم به طرف باغ برو بعد از گذاشتن از یک ایوان به جنگل سرسبز کوچکی میرسی که در وسط اون یک درخت با تنه طلایی و برگهای زمردین قرار داره تو میتونی پرنده زیبایی را که مدت هاست دنبالش میگردی، پیدا کنی. تو باید شاخهی را که او روش نشسته ببری و بدون تأخیر به اینجا بیاری. اما به تو هشدار میدم اگه دستوراتمو مثل دو دفعه قبل درست اجرا نکنی، دیگه نه من میتونم کمکت کنم، نه هیچ کس دیگه. بعد گفتن این کلمات، واقع به داخل آب پرید و شاهزاده که این تهدیدها خیلی روش اثر گذاشته بود تصمیم گرفت حواسش رو خوب جمع کنه. همه چیز همونطور بود که قرباقه گفته بود. ایوان، جنگل، درخت انگیز و پرنده زیبا که روی یکی از شاخه ها خواب رفته بود. او فوری شاخه رو برید و با اینکه متوجه قفس تلایی زیبایی که روی یکی از شاخه ها بود شد و خیلی هم به دردش میخورد اونا بر نداشت و به طرف چشمه به راه افتاد. در تمام طول راه نفسش رو در سینه حبس کرده بود و آهسته راه میرفت تا مبادا پرنده را بیدار کنه. اما چیزی رو که باعث حیرت او شده بود این بود که در ای که قبلا چشمه قرار داشت حالا قصر کوچک و سادهی به چشم خوره و جلوی در آن دختر زیبایی استاده که مرد با دیدن او نزدیک بود از هوش بره او فریاد زد خدای من خانون، خدای من واقعا خودتون هستی؟ گونه های دختر سرخ شد و جواب داد آه سرور من من مدت هاست چهره شما رو میبینم ولی فکر نمیکردم شما تا به حال مرا دیده باشی مرد جواب داد شما نمیتونید تصور کنید من چه ساعت ها روزهایی را رو با خیال شما گذروندم و بعد آنها در مورد اتفاقات عجیبی که براشون افتاده بود با هم صحبت کردند و هرچه بیشتر می‌گفتند، بیشتر مطمئن می‌شدند که هرچه در آینه دیده بودند حقیقت داشت بعد از اینکه مدتی با هم حرف زدند شاهزاده دیگه نتونست جلوی خودشو و بگیره و پرسید که چه اتفاق خوشایندی باعث شده او به جنگل بیاد چشمه کجا رفته آیا او خبری از قرباقی که همه موفقیتش رو مدیون او میدونه داره یا نه؟ و اون پرندهی رو که هنوز در خواب بود به چه کسی باید بده؟ دختر جواب داد سر بر من باید بگویم که قورباغه الان کنار شماست اجازه بده سرگذشتم و برای تعریف کنم زیاد طولانی نیست من نمیدونم وطنم کجاست نه پدر و مادرم و میشناسم. تنها چیزی که میدونم اینه که اسمم سرپنتینه از وقتی به دنیا اومدم فرشته ها از من مراقبت کردند. اونا منو تربیت کردن و با من خیلی مهربون بودن من همیشه تنها بودم تا دو سال پیش هیچ آرزوی جزی نداشتم من یک آینه داشتم در اینجا شرما خجالت باعث شد و او مکس کرد ولی چند لحظه بعد که به خودش مسلط شد ادامه داد میدونید که فرشته ها دوست دارن هرچی که میگن بیچونه چرا باید اجرا بشه؟ اونها بودن که قبل از اومدن شما این خونه را به چشمه تبدیل کردند که شما الان سراغشو میگیرین و منو تبدیل به غرباقه کردن. اونا دستور دادم به اولین کسی که کنار چشمه اومد دقیقا همون چیزایی را بگم که من به شما گفتم. اما سرور من وقتی شما اومدید قلب من که برای شما میتبید پر از قصه شد چون مجبور بودم خودم را به شکل یه جونور زشت به شما نشون بدم. اما چاره‌ای نبود و با اینکه خیلی سخت بود مجبور بودم تحمل کنم من با تمام وجود دلم میخواست موفق بشید نه فقط به خاطر خودتون بلکه به خاطر خودم چون من هرگز نمیتونستم به شکل قبل برگردم مگر اینکه شما صاحب پرنده زیبا می‌شدید در ضمن من از علت جستجوی شما کاملا بیخبر هستم سافیر جریان بیماری پدرش و را که اتفاق افتاده بود و توضیح داد. با شنیدن ماجرا سرپنتین خیلی غمگین شد و چشمهاش پر از عشق شد. او گفت آه سرورم شما به جز تصویری که در آینه دیده ای چیزی از من نمیدونین؟ و حالا من که حتی اسم پدر مادرم رو هم نمیدونم. فهمیدم که شما پسر یه پادشاه هستید. اسرار سافیر در مورد اینکه فقط علاقه اونها به هم مهم هست فایده نداشت. سرپندیل فقط جواب داد من به قدری به شما علاقه دارم که اجازه نمیدم با کسی پایینتر از طبقه خودتون ازدواج کنید البته این موضوع خیلی منو عذاب میده اما نظرم تغییر نمیکنه اگه فرشته ها نگن که خانواده من هم‌سطح خانواده شما بودن احساسمو زیر پا میذارم و ازدواج با شما رو قبول نمیکنم گفتگو تازه به اینجا رسیده بود و به نظر می اومد باز هم ادامه داشته باشه که یکی از فرشته ها سوار بر یک عرابه سفید ظاهر شد که زن زیبا و میان سالی هم داخل اون نشسته بود. در این لحظه پرنده ناگهان بیدار شد و بالاپرزنان پرزنان روشانه سافیر نشست و دیگه هرگز اونجا رو ترک نکرد و به روش پرنده ها او رو نوازش کرد. فرشته به سرپنتین گفت که رفتارش اونو خیلی خوشحال کرده و در درس با نظر سافیر هم موافقه. سپس پسر را بزنی که همراهش بود معرفی کرد و توضیح داد که آن خانم کسی نیست جز زنموی سافیر و بیوه دیامانتینو همه خوشحال شدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند بعد فرشتی سوار عربش شد و آگلانتینو را کنارش نشوند و سافیر و سرپنتینو روی صندلی جلو نشستند او پیغامی را برای همراهان شاهزاده فرستاد تا به سرزمین شاهزاده فریدور برگردند و خبر بدند، پرنده زیبا پیدا شده. همه کارها انجام شده، عرابه به راه افتاد. اما با وجود سفر راحتی که در آسمان داشتند، زمان برای سافیر و سرپنتین خیلی سری گذشت. چون خیلی چیزهای زیادی بود که باید به آن فکر میکردن. اونها از شدت خوشحالی باور نمیکردن کنار هم نشستند که عرابه به قصر پادشاه پریدور رسید. پادشاه در اتاقی که روی پشت بام بود خوابیده بود و پرستارش هر لحظه منتظر مرگ او بود همین که عرابه به بالای قصر رسید پرنده به پرواز درآمد و یک راست به طرف پادشاه در حال مرگ رفت و در یک چشم برهم زدن اونو شفا داد بعد به شکل اول خود تبدیل شد و پادشاه فهمید پرنده همان ملکه کنستانس است کسی که فکر می‌کرد مدت‌ها قبل مرده پریدور از دیدار دوباره همسر و پسرش خیلی خوشحال شد اونا با کمک فرشتهها همه خود را برای جشن ازدواج صافی و سرپنتین آماده کردند دیگه معلوم شده بود که سرپنتین دختر آگلانتینو و دیامانتینواست و او مثل صافی یک شاهزاده است مردم آن کشور همه شاد و خوشحال شدند و تا آخر عمر با خوبی و خوشی زندگی کردند